فصل بیست وقتی ایسا و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به بیت بیتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن اولاغی را با کرره اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند با آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگوی نبی تحقق یافت که می‌فرماید، به دختر سحیون بگویید این پادشاه تو است که بر اولاغی نشسته و بر کره چارپای سوار است و با فروتنی نزد تو می آن دو شاگرد رفتن و آنچه بان ها گفته شده بود انجام دادند. بان با الاغ و کرش را آوردند. وانگاه رداهای رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را میبریدند و در راه میگسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو میرفتند، و آنها که از عقب می‌آمدند فریاد میزدند و میگفتند: مبارک باد پسر داوود فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند میآید خدای متعال او را مبارک سازد همین که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و دیمی می‌پرسیدند این شخص کیست جمعیت پاسخ میدادند. این ایسای پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است. آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت کتاب مقدس می‌فرماید میفرمایید خانه من، نمازخانه خواهنده خواهد شد اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می‌زدند مبارک باد پسر داوود خشمگین شدند آنها از ایسا پرسیدند: «آیا میشنوی اینها چه میگویند؟ ایسا جواب داد: «بلی میشنوم؟ مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخارگان را میآموزید تا زبان آنها به هم و سنای تو پردازد. آنگاه آنان را ترک کرد و شهر خارج شد و به بیت اننیار رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی ایسا به شهر برگشت گرسنه شد. و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت. اما جز برگ چیزی در آن نیافت؟ پس آن درخت را خطاب کرده فرمود تو دیگر هرگز سمری نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟ عیسی در پاسخ آنان گفت: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. ایسا وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند با چه اجازه ای دست به چه این کارهایی میزنی و کی این اختیار را به تو داده است ایسا در جواب با آنها گفت من نیز از شما سآلی میکنم اگر با آن جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه ای این کارها را میکنم آیا تعمید یهیا از جانب خدا بود و یا از جانب انسان بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در میگفتند اگر بگوییم از جانب خداست او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردی؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است از مردم میترسیم زیرا همه یهیا را یک تیانبر می‌دانند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی‌دانیم. عیسی فرمود پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه ای این کارها را می ده. عقیده شما در این خصوص چیست شخصی دو پسر داشت او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان من برو و در آنجا کار کن آن پسر جواب داد من نمی روم، اما بعد پشیمان شد و رفت آن را پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت او پاسخ داد اطاعت میکنم ای آقا اما هرگز نرفت کدام یکی از این دو بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتن اولی پس ایسا جواب داد بدانید که باجگیران و فاهشه قبل از شما به پادشاه خدا وارد خواهند زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید ولی باجگیران و فاهشه باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به دیگری دیگر دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کن و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آن را آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت انگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد، تا انگور را تحویل بگیرند، اما باغبانان خادمان او را گرفته، یکی را کتک زدند دیگری را کشتن و سومی را سنگ سار کردند. صاحب باغ بار دیگر اده بیشتری از خادمان خود را فرستاد، با آنها نیز به همانطور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت، آنان احترام پسرم را نگه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدن به اکیر گفتن، این وارث است. بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قطر سانیدن. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید، با باغبانان شه خواهد کرد آنها جواب دادند آن مردان شری را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند آن را آنان فرمود آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می بنابراین به شما می گویم که پادشاه خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که سماراتی شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خورد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به قبار مبدل خواهد ساخت. وقتی سران کاهنان و فریسیان مسائل او را شنیدن، فهمیدند که عیسی با آنها اشاره می‌کند آنها خواستند او را دستگیر کنند اما از مردم که عیسی را پیامبر میدانستند میترسیدند.